اون توانی که به بدان قدرت میده و میتونن کارهای بد رو بکنن انجام بدن اون توان از خدای متعاله همون خدایی که توان به بدها میده کارهای بد میکنن میتونه با یه سببی اسباب دست خودشه با یه سببی کار رو جور دیگه‌ای بسخرونه مرحوم واسط مولزهوی کشمیری رحم الله علیه حاج لوزما استاد خیلی از بزرگانه محوم کشمیری محوم نخودکی مثلا آسد عبول حسن عسکری پدر این آسد مرتزا عسکری که مدت علام عسکری اطوان اسم علام عسکری که مرتزا گذاشتن به خاطر آسد مرتزا کشمیری که استاد پدرش بوده به عشق گستادش پدرش در سامیرایشون به دنیا میاد اسمشون بجاره مرتزا ایشون وارد مدرسه میشه میبینه که طلبه ها شب جمعه است رفتن یه سری کربلا یه سری منزل رفتن همه هم نیست در بسته بله همراهش میگه گفتش که میگن اگر کسی اسم مادر حضرت موسی رو بلد بشه دست بزنه به قفل قفل باز میشه بله فرمایش کرده بود که میگن اگر اسم مادر حضرت موسی رو به قفل بسته بخونی قفل باز میشه ولی اسم مادر ما حضرت زهرا بالاتر از اسم مادر موسای کلیم هست یا زهرا میگه در باز میشه این گفت بالاخره از راهش باید باز بشه ولی حالا راهش بسته هست این باید پشت در بیشینه تا حالا صبح مثلا کی بیاد نیاد اون قدرتی که در سیطره همه قدرت هاست اون چیزی که در واقع سببه آمل اصلیش اون مسبب الاسبابه او هر کاری بخواد میتونه بکنه شما هم, ما هم باید همینطور طور رو قفل بستر رو بستر با یه ذکر مثلا بلندی مثل ذکر حضاست زهرا بیتونیم باز کنیم تا اون مسئله که اونا میره ما نمیدهیم فکر میکنیم مثلا اون حرکت حرکت خاصیه عزیزان این روایت گربه نوافل که معروف هست گربه نوافل نیست دقت بکنید گربه پرایزه امام صادق الله علی با حدیث محکم با سند محکم کافی شریف نقل کرده کلی کلینی نقل میکنه از امام صادق که اگر کسی؟ عمل به واجبات داشته باشه ترک محرمات داشته باشه خداوند گوش او میشه خداوند زبان او میشه خداوند دست او میشه همه حرکات و سکناتش به دست خداست او وکیل این بنده میشه نعمل وکیلم هست فقط به خاطر اینکه از گناه دوری میکن انسان در ادامش داره در این روایت امام صادق میفرماید اگر کسی فرایض رو فقط دیگه نوافل و از کار خاص و نماز و شب و اینها بحث دیگه از گناه دوری کنه که یکی از گناهان ترک واجبات هست خداوند او رو مستجاب دعا میکنه در این روایت تصریح کرده حضرت این که آسد دست میزنه یا رو میگه و در باز میشه، قفل باز میشه این خیلی کار شاقی نیست بگیم عجب انسان هایت اونا خیلی بزرگتر از این حرکه بودن این کارهای معمولیشون بوده دیگه لذا باید به خدا اعتماد کرد این تنصر الله اگر ما به اندازه که او تغاظه داره به حرفش بریم او حتما ما رو نسرت میکنه حتماً میگیم حتی در مشکلات خاص میبهله سبب دست خودشه این باید قاعدتاً با این مریضی مثلا از این دنیا مفارقت کنه اما وقتی خدا بخواد یه یه حرکت اونم اینجور نید که مقدمشی نیکنه. همین که اراده میکنه چیزی رو کن کن ارادهش مسابیه است با نتیجه گرفتن لذا باید با خدا رفیق شد باید با خدا طرح دوستی و انس و رفاقت ریخت هیچ چاره نیست درسته به ما اختیار داده میگه در مسائل تشریر خودت میتونه میخوای به حرف من عمل کن نمیخوای مثلا ما رو به فکر خودت یا افراد مثل خود جمسند تر بدن به ترشون عمل کن برای زندگی بهتر. اما اون راهی که من میگم اگر دنبال کنی من بهش خیلی مجدسونم. این زبان عدیشه ولی در واقع هیچ قدرتی که از قدرت خدا وجود نداره. همه قدرت ها تحت سیطره و تحت احاطه خدای متقاله. اگر با اون رفیق نشیم همیشه گرفت من اعراضم هم ذکری و اینه به اون زنکا. زندگی تیره تار میشه اگر از یاد او یاد عملی او انسان بیرون بیاد زندگیش تیره تاره حیرانه. همه اشتی کنم،, اشتی کنم داره. باید با خدا عشتی کرد. هیچ راهی نداره. نمیشه بگیم اختیار داریم. اختیار داریم ولی این همه مشکلات مختلف بعضیش حل میشه بعد از مدتی منطقا پدر آدم جلوش رو چشمش میان بعضی هم لاینحل می کشه آدم رو آب روی آدم رو میبره حیثیت آدم به باد میره جون آدم گرفته میشه چروکیده میشه انسان تو کس و ناکت نمیتونه امتونه بلند کنه پس بعد با خدا تره دوستی باش رفیق شد و اونس گرفت راهش هم همینی که کردم این چکیده قرآن هست قرآن مهوریتش بر تقواست تقوا یعنی مقتضیات گناه رو خودمون نشینه همین این مقدار اگه با خدا رفاقت کنیم بسه خیلی کار سختی نیست نا. نمیگه اگه خود تو بین مردی بنداز خود تو تو گناه باید خود تو نگه دار اگه بخواهی به مرد رفیخشی نمیتونی خودش خلق کردی میدونیم که این کار نکن نزدیک گناه نشو در روایت هست روایت متعدد از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که نزدیک گناه نشید چه بسا در همون حول و حش گناه میچرخید مرتکب گناه بشید از امام باقر همون علی روایت هست که اون کسی که به طرف گناه خودش رو نزدیک میکنه بداند که منجر به گناه میشه حرکتش اینا همه نشون میده که نزدیک شدن به گناه هم گناه هست. خلاف تقواست تقوای یعنی پرهیز کنیم از گناه نه اینکه گناه نکنیم گناه کسی بگه من گناه نمی کنم یا دروغ میگه یا نیمیدونه چ میگه لذاست که در مثلا دستورات داریم که در یه جای دربسته با نامحرم قرار نگیرید میگه حرامه حرام نیست که بالاخره کاری نشده که یا آسانسور دیگه یا نفری مثلا یازده طبقه رو میریم بالا و میره سر کار خودش ما میریم دنبال کار خودمو نه این زمینه باعث میشه که مشکل پیش بیاد. و چه مشکلی؟ بحث میکنه یا مثلا حالش خوب نیست ناقصه یا کلک میزنه دروغ میگه. اوه خوار بردن این با هم مادره میگفت که هل این دختره این پسره باشه چی میشه؟ اونم داداششه دیگه داداششه که بیشینن که جا تو توی پاک با که مثلا پاپکی چیزی بگیدم بکرم با چیزی میشه کنار هم میشه سن. در هر شل اونسی باعث اتصال ما باعث رفاقت ما باعث اونس ما با خدای متعال میشه همین مقدار فعالیت هست با اختیار نزدیک گناه نشی اگر با او رفاقت رو برقرار کنیم حساب هم دیگه جداست با دیگران همان ماشین تو از کجا بی آب بوده اومدی تا اینجا پیکان قرازه مگفت پی مثلا 45 کلیمیتری قوم دروغ میگی آجا من افته شما هم میشته سما به اونقا میگر من شما هم دروغ درند دروق نیست ولی دیگه داری دروق میگی از 45 کلومتی قوم تا اینجا بدون آب آمدیم اومده دیگه ماشینه گفت بابا جان من سر نکویی که اون نکویی قوم، گم اومدم تا خونه آب نداشتید باشه زدم باشه سنسوی هزم امامتی چی شده سخته تو اونجا آمدید تا اینجا بگو من اصلا متوجه نشده تو دیگه کی هستی خواهی یک مومن حال نه بی دست پا حال این هر حال پا بیاد پایین و ماشین قل بده و بیگیره ببند و, و پهنا. سنگ خدا رو فقط به سینه می‌زاده. می‌گیم خب آخه بابا سبب و مسبب چه میشه؟ علت و قانون علت و معلول برای عالم برقراره. می‌بله. می‌خوب قائلاً وقتی آب نیست باید موتور خراب شد دیگه. می‌گیم همون خدای که سبب درست کار کردن موتور وجود آب مثلاً تو رادیاتور گذاشته همون خدا استثنائی یه سببی دیگه می زده که <تصفيق> این ماشینی برسه به مقصد این با نمونه شب مثلا ساعت دوازه شب بیه طلبه مثلا ما ضربه ضربه با خونیم ولی عملا ضرب و زور بی نداریم بخوایی مثلا قدرتی داشته باشیم البته من دارم آمان البته من هر پیش میدون ولی به خدا اون که اهل دوست دارن باشن خدا می دوست دارن حالا اونایی که اهل تقوا میشن که هیچ اونایی که اهل تقوا میشن یه قدم اومدن خدا میفرماده که یه قدم به طرف من من چیکار میکنم؟ ده قدم میام اون یه قدم ما همینه که خدای من با دست خودم خودم رو به گناه نزدیک نمی کنم. دستا بالا این تمام ورزای منه نیا علی قدم میاد وقتی ده قدم میاد انسان اشتیاقش بیشتر میشه حرکتش بیشتر میشه با خدا اونسش بیشتر میشه فعالیتی بیشتر کارهای بیشتر و میشه کسی که حد اقلش مستجاب و میشه این حد اقل کار مومنه باقیه دیگه با حمت افراد هست. خدا رو اصلا میدیم به حق خودش.